بسم الله الرحمن الرحيم بيت بيسيكم خونديم كي بود تحريمها آه والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة أصل درين أشياء بارتيه بارطهارة بعدش در بيت بيسيكم قفت والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل ففهم هذا الله ما يمل أصل در ابداع همون زنان بود و مساله فروج بود و در گوشت ها و در جان و اموال انسان معصوم اصل بر حرمت است تا اینکه دلیلی بر چی بیاد بر حلت بیاد ففهم هداک الله ما یملو بفهم خدا هدایتت کنه آنچرا که املا میشه آنچرا که املا میشه ایتالب اونارو چیکار کن بفهم البته در بعضی از این مسائلی هست مثلا اصل در گوشت ها بر حلت مگر آنچه که چی بشه حرمتش بیان بشه چون در قرآن کریم اومده محرم ها رو بیان کرده حرام ها رو چی کار کرده این اینو میرسونه می رسونه که اصل بر چیه بر حلت مثلا اگر الان یکی بیاد بگاه گونجشک مثلا مثال میزنم یا فلان حالا گونجش که کوچیکه رو آره اصل بر حلت یا حرمت من میگم از اون جایی که اصل بر حلت اگر کسی گفت حرامه با دلیل بیاره اگر کسی گفت حرامه باد چیکار بکنه دلیل بیاره و همین است دیدگاه جمهور اصولی ها و همین است دیدگاه جمهور اصولی ها حالا اگر از اون زاویه گوشت ها رو بن بحثه زبه و غیر زبهش اون موقع اصل برچی میشه حرمت میشه مگر این که ثابت بشه این به اون شیوه مشروع شده زبه شده خب بیا اصل بعدی رو بیان میکنه و فی عاداتنا الاباحه حتی یجیا صارف الاباحه پس بس رسیدیم به بیت بیسود دوم. میگه اصل در عادات ما بر مباح بودن است در عادات در معاملات اصل بر چه است مباحب. اصل بر این است که این حرکات این معاملات مباحند مگر اینکه در تضاد باشند با دلیلی شرعی قاعده ای و اصل شرعی حتی یی اسارف الاباحه این اینکه صارف بیاد اینو از مباح بودن به دراوردت اینو از مباحبودن بودن کار کنه؟ صرف کند، بگرداند پس و الاصل فی عادتینا الاباحه اصل در عادت ما اباحه هست اصل مبتدای اباحه هم خبرشه اصل در عادت چیه؟ بر بودن است تا اینکه صارف بیاد و اونو از مباحبودن به در آورد که همون دلیل هست که همون چی هست؟ تضاد داشته باشه با نسی یا با اصلی از اصول شریعت ولیس مشروعا من الامور غیر الذي في شرعنا مذكور بله اصل دیگه رو در قاعده 23 مطرح میکنه و اون این است که اصل در امور عبادی بر ممنوع بودن است بر من و حضر هست غیرالذی فی شرعینا مذکور و مگر در شرع مذکور شده باشه. در مسئله نماز فرق میکنه با عادات، با معاملات. در مسئله نماز ما میگیم اصل بر ممنوع بودن است. اگر کسی آه اومد به عنوان مثال رفولیدن انجام داد، چکار کرد؟ رفولید. ما بهش میگیم آقا دلیلت بر رفولیدن چیست؟ اصل بر ممنوعیت است؟ اگر در شرع ذکر شده بود که این کاری انجام گرفته است اون موقع پذیرفته میشه متوجه شدی ماموسا پس اصل در عبادت بر چه است همانطور که اصل در معاملات بر حلیت بود اصل در عبادت منعه است یعنی تو نمیتونی کاری رو انجام بدی مگر این که دلیل داشته باشی مگر این که چکار کنی ولی در معاملات و عادات نه اونجا اصل بر حلت است اصل بر این است که چیزها حلالند مگر اینکه که دلیلی بیاد بگوید آقا این چیز حرام است حالا با توجه به علت هایی که در شرع وجود داره از مذارت بگیر و حکمت ها و علل دیگر پس در بیت 23 و 22 و 23 این دو اصل رو بیان میکنون در بیت 22 اصل در, در عبادت بر حلت است و اصل در عبادت بر من هست توقیفیان عبادات توقیفیان بله پس معاملات و عادات بر اصلشون باقی هستند تا زمانی که مخالف با یک اصلی شرعی نباشند ولی با به ادله قرآنی و حدیثی که خداوند سبحان اینا رو برای شما چیکار کرده است خلق کرده است اما در عبادتنا در عبادت وما دهست من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راتون بعد عبادت تبقى دستور سور انجام بيجران تبقى چين انجام بيجران ده سور انجام بيجران خوب در بيت بي سچارون قائدين ديگر بيان ميكونين وسائل الامور كالمقاص دي بهذا الحكم للزوائد میگه وسیله امور حکمشون به مقصد است ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ان که واجب بدون آن انجام نمیگیرد خودش هم واجب است میگه وسائل الامور قاصدی ببین هدف نماز است هدف است اقیم ولی این نماز نیاز به وسائلی داره تا انجام بگیره نیاز هست که تو از خونه بود به با مسجد بری اینو میگن وسیله مش میگن بشجی وسیله خب میگه وسائل الاموری کلم مقاصدی وسایل جمع وسیله هست وسیله امور حکم مقصد رو داره حکم همون واجب و فرض رو داره حکم همون مقصد رو داره اگر وسیله‌ای برای واجب واجب است و اگر برای مستحب مستحب است پس حکم وسیله بماننده همون هدف و مقصد است و حکم به هذا الحكم للزوائد میگه همین حکم رو بکن برای زوائد یعنی زوائد هم حکم مقاصد رو داره زوائد رو میگن ها سه مسئله رو مطرح میکنن یکی رو میگن مقصد یکی رو میگن وسیله یکی رو میگن زوائد یا همون متممات همون چی متممات ببین نماز هدف و مقصد است رفتن به نماز این شه برگشتش دوباره به محلت اینو میگن زوائد و متمم پس وحکم به هذا الحكم للزوائد همین حکمو نسبت به زوائد هم داشته باش فل امر وحکوم یعنی همان طور که وسائل حکم رو دارند زوائد هم حکم چی رو دارند؟ مقاصدو دارند بله در ثواب هم همان ثوابی رو که شما در راه رفتنه به مسجد برای نماز داری همون ثوابو در بازگشت هم داری گامی رو که برمیداری داری تا برای نماز برسی چه پاداشی رو داری؟ همون گام در بازگشت از هم داری خب بیتی بی سپنجم وَالْخَطَعُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ از قطهو معبودون الرحمن میگه خطا و اکراه و نسیان رو معبود الرحمن ما اسقاط کرده است و الخطأ و الکراه و النسيان اسقطه معبودنا الرحمن اسقطه فعل ماضيه فاعلش معبودوه الرحمن هم بدل از معبودوه اسقاط کرده است خطا و اکراه و النسيان را معبودمان الرحمن معبود الرحمن ما اینا رو چکار کرده است از روي الرحمة الشينارو ساقط كرده يعني آغا چي شنو؟ يعني گناه شنو ساقط كرده است ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا بس در مورد إكراهم ميجي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان پس گناه اینها چی هست خطا همون اشتباه میگن اکراه همینو اجبار کردن شخص دیگر رو میگن شما شخصی رو اجبار به کاری کنی که راضی نیست اینو میگن اکراه نسیان که خوب فراموشیست شما روی فراموشی نماز تو ترک کردی گناهی برات نوشته نمیشه از روی اکراه گناهی رو انجام دادی گناهی برات نوشته خطاان اومدی انسانی رو کشتی گناهی برات نوشته ببین ولی زمانت فرق میکنه اینی که اینا رو زامن هستی اینا رو جبران کنی اون داستانش جداست شما اگر از روی خطا اومدی انسانی رو کشتی باید رو بپرداز باله ولی خودش این دوباره تقسیم بندی هایی داره که هر اکراهی میتونه اکراهی که تام باشه بعدش برای این اکراه شرط ها آوردند در اکراه چه آوردند؟ ببینید مکره اکراه کننده رو میگن مکره اکراه شده رو مکره چی رو میگن؟ بله اولا شرط اول اینه که مکره موقعی که میخواد یکی رو اکراه بکنه بر اون تهدیدی که میکنه تمانایی داشته باشه این شرطه شرط دوم اینه که مکره اونی که اکراه شده توانمند نباشه که اینو از خودش دفع کنه راه فراری نداشته باشه توان مقابله نداشته باشه شرط سومش اینه که ون تحدید امکان حصولش باشه بله و شرط چهارمش اینه که مکره یقین بکنه یا غالب گمان شمین باشه که این آقا این چیزی رو که داره تحدید میکنه عملش میکنه پس شرط سوم این بود که اگر مکره نیاد اینو عملی نکنه، اون وعدوایی تی میشه، حاصل میشه. شرط چهارم اینه که قالب گمانش این باشه که یا یقین داشته باشه که آن که مكره، مکره اونو تهدید میکنه. اینو چکارش میکنه؟ عملیش میکنه. چکارش میکنه؟ عملیش میکنه. و شرط پنجمی رو هم ذکر میکنن میگن که اون چیزی رو که مکره داره تهدیدش میکنه فوراً یا در زمان نزدیک چی میشه عملی میشه چی میشه خلاص یک سری شرطهایی رو ذکر کردند و پس مکره مکره گناه برش نوشته نمیشه و اقوالش هم اعتبار ندارد یکی از اونجه تلاقی. طلاقی بخاطرین جمهور فقه میگن اگر کسی از روی اکراه طلاق داد زنش طلاق نیست سعدات حنفیه میگویند که تلاق واقع میشه ولی قول صحیح همین هست قول ارجح و اجتهاد ارجح همین هست که تلاق انسان مکره واقع نمیشه خوب اما بیت بعدی لیکن مع الاطلافی ببین ادامه همین بساله هست لیکن مع الاطلافی یثبت البدل و ينتفي التأثيم عنه هو الزلل اما اگر اومد یه چیزی رو تلف کرد گناهکار که نشد در بیت قبلی گفت خدا ازش اسقاط کرده ولی یثبت البدل بدل برش ثابت میشه بدله رو با چیکار کنه شما اگر روی خطا اومدی گوسفند یک انسانی رو کشتی باید بدلش شو بدی قیمت شو بفردازی پس لیکن معا الاطلافی یثبتو البدل اما با اطلاف کردن و از بین بردن بدل چی میشه؟ ثابت میشه و ینتفت تأثیم و هو و اما گناه و زلل ازش چی میشه؟ منتفی میشه گناهی برش ثابت نمیشه پس بدلشو بعد انجام بیدی روی فراموشی و موده نمازو ترک کردی مشکلی نیست گناهی برات نیست ولی باجکار کنی نماز رو بخونی. و بیت بی پس این قاعده در در بیت 25 و 26 اومد خیلی واضح مسئله رو چکار کرد توضیحش داد در بیت بی میگه و من مسائل الاحکام فی التبع یثبت لا اذا استقل لا توقع قاعده بعدی این مسئله رو بیان بیت بعدی این قاعده فقی رو بیان میکنه که فقها این چنین ازش تعبیر میکنن ات تابع او تابعون ات تابع او تابعون یا میگه ات تابع واستقل اخذ غیر حکم حكم حکم اصله تابع حکم اصل رو میگیره ولی زمانی که مستقل شد دیگه حکم اصلو نمیگیره مثال آوردند میگن جنین در بطن مادر طابع مادر است در بحث عبیدو و کنیزه و اینا بحث شرا به رو مطرح مترح میکنند فقه و مثال استقلالش رو هم این مثال میارند که سید بیاد به کنیز حاملش بگه که وقتی که بچه رو به دنیا آوردی، اون بچه چه هست؟ آزاد هست اینجا اطق شامل که میشه؟ تابع میشه، نه اصل اطق شامل که میشه؟ جنین میشه چون اینجا بحث استقلال شد بحث چه شد؟ و من مسائل الاحکامی فی التبعه یثبتو میگه مسائل احکام در تابع ثابت میشه وللا اذا استقل فوقه اما زمانی که استقلال شد نه ماموصا دقت کن به به بیت و من مسائل الاحکام في التبع يثبت میگه التابع تابعون تابون لا اذا استقل فوقه اما اینجا قاعده بعدی رو میگه التابع اذا استقل اخذ غیر حکم اصله تابع زمانی که مستقل شد حکم اصلو نعمي كده. بيت بس هاشتوني مجهور الأرث به إذا ورد حكم من الشرق الشريف لم يحاد. الأرث محكم، العادة محكمة نمترهمي كنه. بس قائد بيت بعدين قايدرو مي ميارك مجه. العادة محكمة، العرف محكم. نه این <متلاق> بحث عرفه این بحث عرفه اون بحث اصل در آدات بر عباهه است این بحث اینه که آیا عرف تاثیر داره یا نه اینو مطرح میکنه خودش علام میگه ولی اورف معمول به اذا ورد حکم من الشرع الشریف لم یو ببین میگه عرف عمل میشه بش زمانی که حکمی از شرع شریف وارد شده محدود نشده بود حدش مشخص نبود عرف میاد اونو تعیین میکنه مطلقاتو عرف چه کار میکنه؟ تعیین میکنه. مثلا در یک منطقه عرف چنین هست که مهریه رو مجزا می‌گیرن، قسمتشو نقد میگیرن، قسمت, قسمت دیگه مینویسند می‌نویسند. حالا اگر در یک مهریه نیومدان تعیین نکردن میگه عرف میاد کار میکنه؟ تعیین میکنه. عرف میاد پس عرف محکم هست. یعنی حکم هست، یعنی تعیین میکنه. تأثیر داره بله خب ولی خود این عرف که آیا اللحاز شرعیس اصلا خود عرف بمعنی شناختن میاد اللحاز لغوی و بمعنی پی در پی آمدن هم میاد بعدش در قرآن هموده وع مربل عرف که اینو در تفسیرش احادیثی در این رابطه میاد بعدش هم میارن شرایطی رو البته برای عرف اصولیون ذکر میکنند که این عرف عام باشه یا اغلبی باشه، اکثریت باشه. طارئ نباشه و مخالف با اصول شرعی نباشه. مخالف با اون مقاصد شریعت نباشه، مخالف با نصوص شرعی نباشه. خب. که بعدش عرف قولی داریم و عرف فعلی و از جهتی دیگر عرف عام داریم و عرف خاص عرف عام اونو میگن که در نزد تمام مردم عرفه و عرف خاص اونو میگن که فقط در یک شهر خاص یا در نزد مثلا تجار یا در نزد یک گروه خاص عرف باشه که این تقسیم بندیه در کتب بزرگتر میارن پس عرف میاد اون چیزی رو که اومده است و حدش تعیین نشده است چکارش میکنه؟ تعیین میکنه طبق عرف میاد خیلی از مسائل عادات و معاملات اینجوری دیگه تعیین میشند مثلا در بحث کوچه ها تاینه تا نمیدونم زمین ها و این مسائل و چه دارند تاثیرات دارند و بیت بعدی میگه معاجل المحضور قبل آنه قد با بالخسرانی مع حرمانه این هم یه قایده رو بیان میکنه که من تعجل شیعا قبل اوانه او به حرمانه هرکس عجله به کاری بکنه قبل از وقت و رسیدنش اقوبتش همینه که محروم میشه از اون چیز مثالشو میارن برای وارس اگر وارس بیاد مورس خودشو بکشه میگن دیگه از ارث چی میشه؟ محروم میشه چرا؟ چون قبل از این که وقتش برسه اینو مد اجله کرد و خودش خودشو چکار کرد؟ کشت معاجل المحضوری قبل آنه کسی که اجله میکنه در محضور قبل از رسیدنش قد حرمانه، این نتیجه همینه که برمیگرده با زیان و ضرر ضرر میکنه و محروم میشه ازش و ازش چی میشه؟ در شریعت وارث از مورس شخص از پدرش ارث میبره ولی اگر اومد پدرشو کشت از ارسش چی میشه؟ چون قبل از این که پدر به مرگ طبیعی بیاد فوت بکنه اینو مده چه کار کرده؟ اجاله کرده پس من تعجل شعن قبل اوانه اوقبه هر هرکس عجله کنه چیزی رو قبل از رسیدن وقتش آن یعنی همون وقت و زمانش اوقبه اقوبت داده میشه بحرمانه بله. و سيو قاعده بیت سیوم قاعده دیگه رو بیان میکنه وإن أتت تحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل اگر تحريم ناهي در نفس عمل بيات در أركان وواجبات شبيه یا در شرائط شبيه فذو فساد وخلل ونكر فاسد وخلل فاسد است مورد قبول نست باعل إن بحسو امام غزالی در مستصفه خودش مفصل میار و دیگران و دیگران هم کتب بزرگ کلا این بحسو میارن و البته فقها همشون اصولیون آراشون یکی نیست خلاصه و این اتت تحریم في نفس العمل اگر تحریم در نفس عمل عمادیات در شرطش فذو فساد و خلل انکارتی هست فاسده هست النهی يقتزی الفصاده النهی يقتزی ال فساده نه اقتصاد چی میکنه؟ اقتصاد فساد میکنه. نه خواستار فساد است، باطل بودن است. ولی بستگی داره که نه به ذاتش بر بگرده یا به وصفش بر بگرده یا به چیز دیگه ای بر بگرده که اهناف میگن اگر به وصفش یا به ذاتش بر بگرده باطل و اگر به امر مرتبه دیگه ای بر بگرده بین باطل و فاسد احناف در غیر عبادت فرق قائلن ولی در عبادت نه در عبادت اگر احناف گفتن فاسد یا باطله معنی شکیست ولی اگر در عادات و معاملات گفتن فاسد یا باطل بدون که فرق داره بله خب پس وإذا أت التح وإن أت التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلال أجر قامت تحريم در نفس عمل يا در شرطش فاسد هاست كبعدش در فقه قلبته إينارو تجار ميكونت تقسيم بندي ميكونت در فقه ميandi إينارو تجار ميكونت تقسيم بندي ميكونت مثلاً در بحث سناماس أجر خلال در و ارکان و در شرایط پیش اومد شرطهای نماز یا ارکان نماز خب فاسده ولی در واجباتش تفصیل داره اگه عمدی بود فاسده ولی اگر عمدی نبود با سجده صفتی میشه جبران میشه که اینا هم مسائل ریزی کستن که در فقه اونها رو چکار میکنند مطرح میکنند و بیت سی میگه و مطلیفون موذیهی لیسی از بعد الدفاع بلتی هی احسنو من اطلاف شیئن لدفع اذا فلا زمان علیه هرکس چیزی رو تلف کرد برای دفع آزار و ازیتش زمانتی براش نیست آقا شما در احرامی مثلا به عنوان مثال یه حیوانی ممنوعه که حیوانو سید بکنی یا بکشی حیوانی میاد برای حمله میکنه اینجا برای دفع اعضا اگر اومدی اینو کشتی دیگه زمانتی برات نیست ولو این که ممتلک باشه مال شخص دیگهی باشه پس هر کس تلف کرد چیزی رو تا عذیتی رو دفع بکنه زمانتی تیبرش نیست و مطلف موضیهی و مطلف اسم فائله موضی هم اسم فائله و تلف کنندهی آنچه که عذیت می کند او را و هر کس تلف کرد آنچه را که او چکار می کند عذیتش پس و تلف کننده از بین برنده آزار دهنده اش شخصی اومد آنچه را که آزارش میدهد تلفش کرد لیس یز منو بعد دفاعی باللتیهی احسن زامن نیست برای جهت دفاعش اگر جهت دفاع اومد و اونو تلف کرد في ديو زماني برش نيست بالي ومن أتلف شيئا لدفع ذافة لا على زمانه مم. عليه بعدش در بيت سيو دو سيو سيو سيو عموم چار و سيو ذكر ميكونة كتاها إن شاء الله چار بيتو ميخونة اكتفا ميكونة وقالتو الكل في العمومي في الجمع والإفراد كالعليمي در این چاربیت الفاظی رو در عربی بیان میکنه که دلالت برعام بودن میکنند دلالت بر چی میکنند؟ برعموم میکنند یکی از اونا الف، حالا دیگه نگیم حالا طبق قاعده نهوی چون ابن هشام انصاری در کتاب مغنی اللبیبش یه قاعده رو اونجا بیان میکنه میگه اگر تک حرفی بود ما چطور به می‌کنیم که اسمش میگیریم می‌گیریم مثلا اگر ل بود بهش می‌گیم لام آ بود بهش می‌گیم نون بود بهش می‌گیم چی نون ب بود بهش می‌گیم با ر بود بهش می‌گیم را اسم‌هاشون رو می‌گیریم ولی اگر دو حرفی بودن نه مسما رو می‌گیم چرا می‌گیم بله الف و ل با هم بودن الان چند حرف شدن دوتا دیگه نمی‌گیم الف و لام بلکه می‌گیم چی ال پس این سخان رو امام ابن حشام انصاری رحمه الله در کتاب مغنی لبیش ذکر میکنه. میگه زمانی که کلمه از یک حرف تشکیل شده بود با اسمش نام گذاری میشه. مانند حرفهای که یک حرفی اند مثل حمزه و اله آخر. بهشون گفته میشه حمزه الیف با تا ثا جیم. اینجوری گفته میشن. دیگه نمیگیم آب بی ته ثه جیم. ج حی اینجوری نمیگیم نه, نه چون تک حرفی هست رو میگیم ولی زمانی که از دو حرفی و بیشتر تشکیل شده بشن با مصمماشونو ذکر آ مثلا موقعی که میگیم زید دیگه نمیگیم زاو یاو دال بلکه میگیم زید بلکه میگیم چی؟ الو هم میگیم ال خلاصه میگه و ال توفیدو الکل فی العمومی في الجمعی کل کالعالمی الیف و معنای عام میده در جمع مفرد چه روی مفردی بیاد ما کل الیمی مانند علیم الف علیم تمام انواع علوم شامل میشه که روی جمع بیاد المسلمون یعنی تمام مسلمانان المسلمات پس و ال تفید الكل فی العموم فی الجمع والافرادی کل علیمی الف عموم میرسونه عام میرسونه معنای عام مداره در جمع و افراد، در جمع و مفرادش مفردش کل علیم مفردش مانند چی علی و نکرانو و نکرانو فی سیاق النافی تو نکراتو یعنی پیش شما نکراتو آورده؟ بله نکراتو صحیحه والنكرات دروس انشتباهي والنكرات في سياق النفي تعتل عمومه أو سياق النهي كلامي دهمي كي بله نكرات درس نكرانوا اشتباهي اصلا والنكرات في سياق النفي نكرها در سياق النفي عموم مثلا تعتل عمومه عمومه معناه عامه داري او سیاق نهی یا در سیاق نهی یعنی قبل از نهی قبل از نکره چی نفی بیاد چی نهی بیاد چی رو میرسونه عموم میرسونه مانند لا اله الا الله اینجا اله که نکره است بعد از نفی اومده بعد از لا اومده است لذا تمام انواع معبودات رو شامل میشه هیچ معبودی نیست جز معبود بحقی نیست جز الله پس نکره ها در سیاق نفی ودر سياق الناهي أموم رو كذاك من وما تفيداني معا كل العموم يا أخي فاسمعا همچنين من وما أموم رو ميرسوناند اي برادرم انسخنو قشكن من وما من و ما پس اولینی که اموم میرسوند الیفلام استغراقیه بود دومیش دو نکره در سیاق نه یا نه بود که اموم میرسوند و سومیش چه من و ما من همیشه اسمیه هست من چه بله و معنی مختلفی داره برای جزاء و شرط بکار میره. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره كي انجماني عموم ميرسوني موصوليه است بعضه معنى عموم وميرسوني و معناي نكره من مداه ابن هشام اين مثالو براش مررت بمن معجبن مررت بمن معجبن لك انجم من نكري هست مررت بمن مجب به من مجبن لکه. اینجا من نکره هست و چه شده به معنای انسان هست ولی در این حالت در این حالت به من جسب؟ رست شدم به کسی که از تو تکس کار میکرد تعجب می کرد. پس من و ما من؟ اسمی میاد ما میتونه حرفی بیاد و میتونه چی بیاد؟ اسمی بله. قدائر بحث در این بحث بحث کتب نحوی و اصولی در این رابطه بحث میکنن و چهارمین جایی که عموم میرسونه و مثلهو المفرد یضافه چهارمین جا که معنای عموم داره چی هست؟ مفرد زمانی که مضاف باشه و مثله و مثله امومات دیگر است المفرد کلمه مفرد اید یضافه زمانی که باشه؟ مفرد باشه ففهمه دیتا رشده ما یضافه بفهم كبر که به رشد هدایت شوی انچرا که اضافه می شود نسبت داده دا می شود خب پس چهارمین جایی که یا چارمین لفزی که معنی داشت هست اسم مفرد زمانی که مضاف باشه این مثالو معمولا میارن و اما به نعمت ربکا فحدث اینجا نعمت مضاف بکی شده به رب و اما به نعمت ربکا فحدث بله اما به تمام نعمت های پس اینجا نعمت مفرده آه <تصفيق> ولی چون مضافه مانای رو میرسونه <تصفيق> اموم میرسونه پس این چاربه تو آورده بود الفاظ و بیان کرده بود که خب در کتابه دیگه مفصلتر بحثی وجود داره عل معنای عموم میرسونه رسونه عل، تمام علهانه استقراقیه نکرهی نکره که در سیاق نفی و نه باشه من و ما و همچونین مفرد زمانی که چی باشه؟ اضافه باشه و البته الفاظی رو که خودشون معنن دلالت برآم میکنن معنن دلفظ چی؟ لفظ جمع جمعو این مسائل دیگر پس تا همینجا کار کافیست بیت سی و پنجم انشالله از سی و پنجم تا بیت چل و هفتم به اذن الله تعالی جلسه بعدی تکمیل خواهد شد